اندکی از ظهر گذشته از پلاج به هتل رفته از مأمور آسانسور خواست او را تا جلو اتاقش بالا ببرد آنجا در اتاق مدتی جلو آینه نشسته در بهر موهای خاکستری و صورت خسته و شکسته خود رفت در این هنگام به شهرت خود اندیشید و به اینکه بسیاری در کوچه و خیابان میشناسندش و به خاطر کلام گویا و به زیور زیبایی آراستش به احترام به او گرند. تمامی موفقیت های ظاهری هنرش را که به نحوی در خاطرش بود به یاد آورد. و حتی به لقب اشرافی هم که داده بودندش اندیشید. پس انگاه برای صرف نهار به سالن غذاخوری رفته سر میز کوچکش نشست و چون پس از آن سوار آسانسور میشد گروهی جوان و نوجوان هم که از سالن غذاخوری می آمدند دنبال سرش به درون آن اتاقک معلق ریختند و تاچیو نیز به درون آمد او نزدیک آشنباخ ایستاد برای نخستین بار چنان نزدیک که این یک او را نه آنگونه که تابل را ایرامی بلکه به درستی با همه اجزای انسانیش دید و باز شناخت. کسی پسرک را صدا زد و او همچنان که با لبخندی دلانگیز به حد وصف ناپذیری دلنگیز، پاسخ میداد در طبقه اول از آسانسور پیاده شد. با سر فرو انداخته از عقب پیاده شد. آشنباخ اندیشید زیبایی صاحبش را خجول بار میآورد و در اندیشه علتش پای فشرد ولی او متوجه شده بود که دندانهای تاچیو چندان خوشنما نیستند اندکی نکتیز و پرید رنگ بدون درخششی که نشان سلامت است نازک و شکننده آنطور که گاه در اشخاص خون دیده می شود، آشنباخ با خود اندیشید، او بسیار زریف است، به حد ای زریف است، احتمالاً عمر درازی نخواهد کرد، و از هر گونه توضیحی پیش خود، درباره احساس رضایت یا آرامش خاطری که با این افکار همراه بود، صرف نظر کرد. دو ساعتی در اتاقش ماند و طرف های با واپورتو از طریق لاگونای بدبو به سوی ونیز روانه شد. در سن مارکو پیاده شد. در میدانگاه چای خورد و آنگاه در خیابانها به گشت و گذارش مشغول شد. گشت و گذاری که اینجا جزء برنامه روزانه شده بود. منتها همین گردش بود که حال روحی او را به کل تغییر داد و در تصمیم گیری هایش تاثیر تعیین کننده گذاشت. در کوچه ها هوا به طور زننده‌ای دم کرده بود. از سنگینی هوا تمام بوهایی که از منازل و دکانها و پزندگی ها به بیرون روان بود، دود روغن، بخار غذاها و بسیاری بوبرنگ های دیگر در هوا انباشته شده بود و تکان نمی‌خورد. دود سیگار سر جایش در هوا معلق بود و تنها به کندی محف می شد. فشار آدم‌ها در تنگنای کوچه ها به جای که مسافر ما را سرگرم کند مزاحم او بود هرچه بیشتر می‌رفت، وضع وزع ناراحت که هوای دریا و اسکیروکو با هم به وجود می وضعی که در عین حال به صورت تحریک و تخدیر اعصاب ظاهر می شود بیشتر بر او چیره می شود. تمام بدنش عرق بود چشمش جلوش را نمی دید. دلش گرفته بود تب داشت و جریان خون را در سرش حس می کرد. از کوچه های پر آمد گریخته از روی پل انداخت رفت به کوچه پس کوچه های فقیر نشین. آنجا گدایانی به سراغش آمدند و بوی بد بخارات مانع تنفس می شد. در مکانی خاموش، یکی از آن محلات مخصوص ونیز که چهره نفرین شده ای به انسان نشان می دهند، در کنار چشمهی در حالت استراحت همچنان که عرق از پیشانی می دریافت که باید از ونیز برود. حال برای دومین و آخرین بار به او ثابت می‌شد که این شهر در این هوای شرجی برای او هیچ جای مناسبی نیست. اصرار در ماندن خودسری محض بود و خلاف عقل و آینده هوا نامعلوم بود و نمی‌شد به تغییرش امید بست. باید فوراً تصمیم می‌گرفت. بازگشت به شهر و دیار عملی نبود. نویلای تابستانی و نه اقامتگاه زمستانی آمادگی پذیرفتنش را نداشتند. ولی دریا و ساحل تنها اینجا وجود نداشت. اینها جای دیگر هم بود بدون این ها و نفس تولوده لعنتیش یادش به پلاژی در نزدیکی تریست افتاد که به او توصیه شده بود چرا به آنجا نرود؟ یعنی بدون معطلی تا تغییر مجدد محل اقامت ارزشش را داشته باشد پس تصمیمش را گرفت و از جا بلند شد در نزدیکترین ایستگاه گندل قایقی کرایه کرد که او را از لابلای شبکه پرپیچ و خم کانال ها و از زیر بالکنهای نقلی مرمرین که در دو طرفشان مجسمه های شیر قرار گرفته بودند از نبش خزبسته خانه ها و از برابر کاخ با نمای قمنگیزشان که عکس تابلوهای شرکتها را در میان زباله سرگردان در کانال در آب انداخته بودند به سن مارکا ببرد رنجی برد تا به آنجا رسید چون گوندولیر که با کارخانه های بزرگ و شیشگری ها بند و بست داشت هر کجا می رسید سعی می کرد، او را برای بازدید و خرید پیاده کند اگر گردش و سرگردانی در ونیز بنا کرده بود تأثیرش را نشان دادن باز روح کاسبکارانه ملکه فرو شده در آب برای سرکیس کردن قهرمان ما تلاش می کرد که به گونه دلازار حواسش را بیدار نگه دارد. چون به هتل بازگشت پیش از شام به اطلاع دفتر رساند که به علل پیش بینی نشده ای ناچار است فردا صبح آنجا را ترک کند آنها هم ضمن ابراز تأسف حسابش را آماده کردند شام را که خورد آن شب را با گرمی سستی بخشش در سندلی ای که در ایوان پشتی گذاشته بودند به خواندن روزنامه و مجله سبری کرد پیش از خواب بارش را بست و خود را کاملا آماده سفر کرد. خواب خوبی نرفت چون فکر فردا آرام و قرارش را ربوده بود. صبح چون پنجره ها را گشود آسمان همچنان ابری بود. ولی هوا تازه تر می نمود و از همانجا پشیمانی آغاز شد. یعنی اعلام عظیمت عجولانه و اشتباه نبود. اشتباهی که از حال نامساعدش منشع میگرفت گرفت که اعتباری نداشت. اگر قدری صبر کرده بود و به همین زودی از تلاش برای سازش دادن خود با هوای ونیز دست نکشیده بود و از بهبود وضع نومید نشده بود حالا به جای این شتاب و رنج سفر روزی همچون دیروز در ساحل در پیش داشت. ولی دیگر دیر شده بود. باید راه میافتاد. خود چنین خواسته بود. لباس پوشیده و در ساعت هشت برای صبحانه با آسانسور پایین رفت. وارد بوفه که شد هنوز از مهمانهای هتل خبری نبود. در مدتی که در انتظار انجام کارها نشسته بود آنها یکی یکی پیداشان میشد. فنجان چای به لب دختران لهستانی را دید که به همراه سرپرستشان وارد شدند. ابوس و در عین حال با تر و تازگی صبحگاهی با چشمان سرخ شده به طرف میزشان پای پنجره گوشه سالن گام بر میاشتند. در این هنگام دربان، با کلا در دست آمد و موضوع عزیمت را یادآور شد. می "اتومبیل آماده است که او و دیگر میهمانان را به هتل اکسلسیور ببرد." تا از آنجا با قایق موتوری آنها را از راه کانال متعلق به شرکت به ایستگاه راه آهن برسانند. وقت تنگ است که به نظر آشنباخ اصلاً چنین نبود. بیش از یک ساعت تا حرکت قطار او وقت بود. از این رسم هتل که می‌خواستند مسافر را پیش از موقع از آنجا برانند خشمگین بود و بر این خواستش اصرار می که در آرامش سبحانش را به آخر برساند. خدمتگار با تنی رفت و پس از پنج دقیقه دوباره برگشت. اتومبیل نمی منتظر بشود. آشنباخ با ناراحتی پاسخ داد پس حرکت کند و چمدان او را با خود ببرد او هم خود به موقع با قایق موتوری عمومی خواهد رفت و خواهش میکند ترتیب کار را به خود او واگذارند خدمتکار تعظیمی کرد و رفت آشنباخ خوشحال بود که از شر خدمتکار و یادآوریهایش خلاص شده سبحانه را با صبر و حوصله تمام کرد و حتی از گارسون خواست روزنامه ای به او بدهد وقتی بالاخره از جایش برخواست دیگر بسیار تنگ شده بود و از غذا در همین لحظه تا چیو از در شیشه وارد شد او برای رفتن به طرف میزشان راه مسافر ما را قطع کرده در برابر این خاکستری موی پیشانی بلند به توازق چشمان را فرو انداخت تانگاه تا بار دیگر آنها را به شیوه دلپذیر خود با ملایمت و گشادگی بلند کرده به او اندازد و از برابرش گذشت آشنباخ پیش خود اندیشی خدا حافظ تا چیو دیدار کوتاهی بود. و در حالی که بر خلاف عادتش، فکرش را به زبان می‌آورد و پیش خود از لبهایش جاری می کرد به آن افزود به خدا می سبارمد. پس راه افتاد. انعام خدمتگاران را داد. و در حالی که کارمند کوتاقد و فراکبوش با صدای یاهستش با او خداحافظی می‌کرد، هتل را ترک کرد. پیاده. همچنان که آمده بود تا همراه پیش خدمت چمدان به دست بلواری را که از هتل به انتهای جزیره کشیده شده بود از میان گلهای سفیدش به سوی پل چوبی کشتی بخاری طی کند پس به کشتی قدم گذاشته در آن نشست و آنچه پس از آن بر او رفت سفر خوشی نبود سفری بود پر اندوه پر از رنج پشیمانی راه سفر همان راه آشنا بود که از لاگونا از برابر سن مارکو و از کانال بزرگ می گذرد آشنباخ بر نیمکت گرد پای دماغی کشتی نشسته آرنجی بر جان پناه گذاشته و دست را سایبان چشم کرده بود باقهای عمومی را پشت سر گذاشتند پیاتستا بار دیگر با زیبایی شاهانش روی گشود و باز پنهان شد و انگاه حجوم پشت سرهم کاخها چشمنداز را پر کرد. و پس از پیچ راه آبی تاق مرمر ریالتو با قوس پرشکوهش نمایان شد. مسافر ما با دل قمگین تماشامی. هوای شهر این هوای آکنده از بوی افن دریا و باتلاق را که برای ترکش چنان بیتابی کرده بود حال با نفسهای امیق و شیفت وار فرو می بلید یعنی خود نمیدانسته که تا چهت به این همه دل بسته؟ آن نیم و تردید اندکی که امروز صبح نسبت به تصمیمش احساس کرده بود حال چنان غم و دردی در دلش پدید می آورد که چندین بار اشک به چشمانش آمد و با خود گفت کجا ممکن بود که چنین چیزی را از پیش بداند آنچه او نچندان قابل تحمل و حتی گاه به کل غیر قابل تحمل می آفت این فکر بود که هرگز دیگر ونیز را نبیند که این ودایی همیشگی باشد چون از آنجا که برای دومین بار دریافته بود که این شهر برای او بیماریزاست است و برای دومین بار خود را سراسیمه ناچار از ترک آنجا دیده بود پس ناگزیر میبایست برای همیشه به آن به چشم مکانی ممنوع بنگرد که او را با آن سازشی نیست و دیدار دوبارش بیهوده خواهد بود آری حتی احساس می کرد که اگر حال از آنجا برود شرم و قرور اجازش نخواهد داد دیگر هرگز این شهر محبوب را ببیند این شهری که جسمش دوبار از روبرو شدن با آن درمانده بود و این کشمکش میان گرایش روح و قابلیت جسم به چشم نویسندهی روب پیری نهاده چنان گران آمد و شکست جسمانیش چنان ننگاور چنان شایان پرده پوشی و خجلتبار که نمی توانست بفهمد چه ساندی روز به این آسانی و با این بی مبالاتی بدون کمترین تلاش جدی آن را پذیرفته و بارش را به گردن گرفته است. در این اسنا قایق بخاری به ایستگاه راه آهن نزدیک می شود و اندوه و نومیدی تا حد پریشانی زایی بالا می گیرد. عظیمت به چشم مسافر دردمند ناممکن می نمود و بازگشت کم از آن نبود. و این چنین بادلی پر اندوه وارد ایستگاه شد. دیر شده. اگر بخواهد به قطار برسد باید بجنبد. او میخواهد و نمیخواهد. ولی وقت مجال نمیدهد با تازیانش به پیش میراند. شتابان می رود که بلیتی تهیه کند و در میان ازدهام درون سالن، با نگاهش به دنبال کارمند هتل که اینجا مستقر بود گشت. او پیدایش شد و گفت چمدان بزرگ تحویل داده شده. تحویل داده شده؟ بله به بهترین وجه. به مقصد کمو. کمو؟ و از این بگو مگو، از این پرسش خشمگینانه و پاسخ شرمگینانه معلوم می شود که چمدان در بخش حمله بار هتل اکسلسیور با بار دیگران در جهتی کاملا خطا فرستاده شده است آشنباخ کوشید قیافه‌ای بگیرد که در چونین اوزا و احوالی یگان قیافهی مناسب به شمار می آمد. خوشحالی ماجراجویانه و شادی غیرقابل تصوری درونش را می لرزند. کارمند هتل شتابان از آنجا رفت تا شاید بتواند جلو حمل چمدان را بگیرد و چنان که انتظار می رفت بدون ای بازگشت. پس آشنباخ اعلام کرد مایل نیست بدون چمدانش به سفر رود و تصمیم گرفته به هتل ساحلی بازگردد و آنجا منتظر بارش شود. و پرسید آیا قایق بخاری حرکت نکرده؟ کارمند به او اطمینان داد قایق جلوه در است و به زبان ایتالیایی از مسئول گیشه خواست بلیط را پس بگیرد و سوگند خورد پیام فرستاده خواهد شد که از هیچ کاری فروگذار نکنند تا هرچه زودتر چمدان را به دست آورند و چنین بود که این شگفت رخ داد که مسافر ما 20 دقیقه پس از ورودش به ایستگاه راه آهن بار دیگر در کانال بزرگ در راه بازگشت به لیدو بود چه ماجراجویی غیرقابل قابل تصوری چه ماجرای شرم آور مزهک و رویاگونه ای مکانهایی که ساعتی پیش در نهایت اندوه برای همیشه به آنها ودا کرده بود، بار دیگر به دست سرنوشت، بر سر راهش سبز می قایق کوچک در حالی که تنها سرنشینش، بیپروایی پر از ترس و حیجانش، این بیپروایی کودک گریزان را زیر نقاب ناراحتی و گذشت پنهان می کرد. همواج کف بر لب آورده به دو سورانده از میان گندلها و کشتی‌های بخاری با شتابی جانانه به سوی مقصد روان بود. هنوز هم گهگاه به این بخت بعد که به قول او برای خوشبخت ترین افراد هم بهتر از این ممکن نبود دست دهد در دل قهقهه سر میداد ابتدا با قیافه‌های متعجب روبرو می‌شد و توضیحاتی لازم می‌آمد. پس آنگاه چنان که به خود وعده میداد همه چیز دوباره به حال اول برمیگشت. بلایی به خیر گذشته بود. اشتباهی اصلاح شده بود و هر آنچه فکر کرده بود، پشت سر گذاشته، بار دیگر در برابرش رخ می‌گشود و تا مدتی نامحدود به او تل. در زمن احساس او درباره سرعت حرکت قایق اشتباه بود یا بادهای دریایی قایق را چنین پرشتاب پیش می‌راندند امواج به دیوارهای بتونی کانال باریک که از میان جزیره به هتل اکسلسیر می‌رفت می‌خورد آنجا اتوبوسی منتظر بازگشت مسافر ما بود. و او را از بالای ساحل پیچ در پیچ از راهی مستقیم به هتل ساحلی برد. کارمند کوتا قد با سبیل و کت دنبالدارش از پله های هتل به پیشوازش شتافت او با سخنانی زیرکانه و چاپ از این واقعه ابراز تأصف کرده آن را برای خود و مؤسسش بی اندازه ناراحت کننده خاند ولی اعتقاد خود را هم به درستی تصمیم آشنباخ که اینجا منتظر چمدانش بشود به زبان آورد البته اتاق او به کس دیگری داده شده ولی اتاق دیگری به همان خوبی فوراً در اختیارش خواهند گذاشت مأمور سوئیسی آسانسور هم وقتی سوار بر آن بالا می رفتند با لبخندی گفت پادو شانس موسیو که به فرانسه یعنی قسمت نبود حضرت آقا و این چونین مسافر گریزپا بار دیگر مستقر شد در اتاقی که از نظر موقعیت و امکانات با اتاق قبلی تفاوت چندانی نداشت خسته و بیحال از جوش و خروش این صبح عجیب محتویات کیفش را در اتاق پخش کرد و آنگاه در صندلی دستداری پشت پنجره گشوده نشست. دریا سبزی رنگ ای به خود گرفته بود. هوا لطیفتر و پاکتر به نظر می هرچند آسمان همچنان خاکستری بود. آشنباخ دو دست بر به بیرون نگاه می کرد از بازگشتش خوشنود بود و بر تردید و تزلزل و بیخبریش نسبت به خواسته های خیش سرتکان می داد و این چونین شاید ساعتی را به استراحت فارق از اندیشه غرق در رؤیا گذراند. ظهر تا چی دید که در لباس چهارخانه نخی با توری قرمز از دریا آمد و از محدوده پلاش و از راه های انداخته به طرف هتل می رفت. آشنباخ از جایگاه بلندش پیش از آنکه او را به درستی زیر نظر بگیرد فوراً باز شناختش و آمد که پیش خود بیاندیشد، شد عجب تا چیو؟ تو هم که باز این جایی ولی همان آن حس کرد که این درود بی معنی در برابر حقیقت درونش دم فرو می کشد و خاموش می شود شوق و شعفی در خون و شادی دردآلودی در دل خود حس کرد و دریافت که ترک اینجا به خاطر تاچیو بر او چنان گران آمده بوده است خاموش و پنهان از چشم دیگران بر جایگاه بلندش نشسته بود و در درون خیش می نگریست. خواب و رؤیا از قیافش زدوده شده بود. ابروانش سر بلند کرده بود و لبخندی کنچکاو و تنز آمیز خط لبهایش را به دو سو کشیده بود. آنگاه سر بلند کرد. و دست های از جادستی سندلیش با گوسی آهسته رو به هوا بلند شد. کف دست به جلو که گفتی اشاره است به گشودن و گشادن بازوان که حرکتی بود پذیرنده، حرکتی خوشامدگوی و منتظر.